با سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی با داستان دیگه ای در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید اسم داستانمون هست چهل دوست توی یکی از شهرهای ایران دو تا برادر زندگی میکردند. اسم یکیشون کازم و اسم یکیشون علی بابا بود کازم با زن ثروتمندی ازدواج کرده بود و زندگی خوبی داشت. اما علی بابا یه هیزم شکم بود و زندگی زن و فرزنداشو از این راه به دست می یه روز که علی بابا تو جنگل مشغول کار بود، دید که گروهی از سوار از راه دور از بین گرد و غبار نزدیک میشن. علی بابا میترسید که اونا دزد باشند. بالای درختی رفت تا در امان بمونه وقتی مردا نزدیک شدن از اسباشون پایین اومدن و پیاده شدن علی بابا اونا رو شمور چل نفر بودن اونا اسباشون رو به درخت بستن یکی از اونا که علی بابا فکر میکرد رئیس باشه یکمی کمی جلو رفت و جلوی سنگی ایستاد و داد زد باز شو کنجد ناگهان سنگ کنار رفت و گروه وارد قار شدن. اون مردم دنبال اونا رفت و در بسته شد. مردا کمی اونجا موندن. علی بابا می ترسید که نکنه. موقع بیرون اومدن اونو ببینه. بنابراین دچار درد سر بشه و هر طوری که بود بالای درخت نشسته شد دوما ورد تا در باز شد و چهل چهلوز بیرون اومدن. رئیس که آخر از همه رفته بود داخل، اول از همه بیرون اومد و وقتی که همه خارج شدن گفت بسته شو کنجد. مردا سوار اسباشون شدن و رئیس جلوی اونها شروع به حرکت کرد و رفتن. علی بابا از درخت پایین اومد، جلوی تخت سنگ رفت و گفت باز شو کنجد، در باز شد. علی بابا کالار گنبدی زیبایی را رو روبروی خودش دید که پر از کالاهای گرانبها، ابریشم و جعبه های طلا و نغره بود. علی بابا داخل رفت و در بسته شد. اون به نُوره ها توجهی نکرد و تا جایی که میتونست فقط طلا برداشت. بیرون اومد و گفت: "کنجت بسته شد. در بسته شد و اون به طرف خونه رفت. علی بابا وسایلش رو تو حیات خونه گذاشت، طلاها رو پیش زنش برد و بهش نشون داد و گفت که چیزی در این باره به کسی نگه تا اون تلاها رو ببره و یه جا پنهون کنه. زنش گفت بذار اول اونار رو اندازه بگیریم تا تو داری گودال میکنی من میرم و یه ترازو قرض میگیرم. زن علی بابا پیش زن کازم رفت و یه ترازو قرض گرفت. زن کازم که میدونست علی بابا خیلی فقیره خواست بدونه که اونا چه چیزی رو میخوان اندازه بگیرند. بنابراین مقداری چربی کف ترازو ریخت. زن علی بابا به خونه رفت و تلاها رو کف ترازو ریخت و اونها رو اندازه گرفت و خیلی خوشحال شد. بعد ترازو رو برد و به زن کازم داد. اما اصلا دقت نکرده بود که مقداری از تلا به کفایی ترازو چسبیده. زن کازم با دیدن طلاها خیلی کنج کاف شد و به همسرش گفت کازم برادر دستو پولارتره. اون پولار و تلاهاش رو نمیشموره بلکه اونارو وزن میکنه. و بعدم قضیه ترازو و باقی مونده تلاها رو براش توضیح داد. اون شب کازم اصلا خوابش نبود. و فردا صبح اول وقت پیش علی بابا رفت و طلاها رو به علی بابا نشون داد و گفت علی بابا تو وانمود می که فقیری اون وقت تلا وزن می کنی؟ علی بابا فهمید که زن کازم از قضیه باخبر شده و خلاصه مجبور شد که به همه چیز اعتراف کنه و سهمی از طلاها رو به برادرش قول داد کازم گفت باشه قبول می کنم ولی باید بدونم جای این گنج کجاه وگرنه خودم اونو پیدا می کنم و چیزی بهت نمیدم علی بابا که مردی مهربون و ساده بود جای قا رو رمز عبور رو بهش گفت کازم باشه شنیدن این حرفا تصمیم گرفت که خودش بره و همه طلاها و چیزای با ارزش رو برداره صبح زود ده تا قاطر برداشت و به قار رفت و گفت کنجد باز شد. در باز شد و اون داخل رفت و در پشت سرش بسته شد. اون با دیدن این همه گنج نمیدونست که چیکار کنه ولی سعی کرد تا جایی که میتونه چیزهایی با برداره. وقتی که میخواست از اونجا بره یادش نیمد باید چه کلمه رو بگه و به جای کنجد گفت باز شد جو اما در باز نشد. اون اسم چندتا حبوبات و وقلر رو گفت ولی هیچ کدوم درست نبود و در باز نمیشد. و اون خیلی ترسیده بود و نمیدونست چیکار کنه؟ هرچی فکر می کرد کمتر یادش میومد انگار اصلا تو عمرش این اسم رو نشنیده بود. نزدیک ظهر دوستستها اومدن و قاطر های کازم رو دور قار دیدن. این یه هشدار براشون بود. رفتن جلو شمشیراشون رو درآوردن کازم که جلوی ورودی غار ایستاده بود تصمیم گرفت از خودش شهامت نشون بده بنابراین دوید و رئیس دوست‌ها رو گرفت و به زمین انداخت دزد با دیدن این صحنه با شمشیراشون بهش حمله کردند و در یک لحظه اونو کشتن و بدنش رو چهار تکه کردند تا عبرتی برای دیگران بشه و اون رو جلوی قار گذاشتن، بعدم بدون اینکه کاری به قاطرها داشته باشن، اونجا رو ترک کردن. شب شد و زن کازم که نگران شوهرش بود پیش علی بابا رفت تا خبری از شوهرش بگیره. علی بابا سعی کرد زن برادرش رو ساکت کنه. به دنبال کازم رفت. اولین چیزی که در ورودی غار دید جسد برادرش بود. اون جسد رو برداشت و به سرعت به خونه برگشت. حیوانهای رو هم که بارشون تلا بود به خونه خودش فرستاد و بقیه چیزها رو به خونه برادرش برد. خدمت کار خونه برادرش در رو باز کرد. علی بابا که میدونست اون دختر که وفاداریه گفت این جسد عربابته اونو کشتن. ولی ما نباید به کسی بگیم و باید طوری وانمود کنیم که انگاری تو خونه مرده. حالا به خانومت بگو بیاد. زن کازم که صدای اون رو شنیده بود با اشگاه بیرون اومد. علی بابا گفت اگه به میتونه بیاد و با اون و همسرش زندگی کنه و زن کازم هم قبول کرد. خدمتکار که از مرگ اربابش ناراحت شده بود با خودش گفت ارباب بیچاره من دیگه نمیتونه چیزی بخوره یا حرف بزنه. هیچکس هم نمیدونه که گناه اون چیه. روز بعد اونا شرایطی آماده کردن که وانمود کنن کازم تو خونه مرده. اصر اون روز زن کازم و خدمتکار شروع به داد و فریاد کردن که کازم مرده و روز بعد خدمتکار به سراغ پین دوزی که به تازگی در بینون شهر وساط پنگ کرده بود رفت. تکی طلا تو دستش گذاشت و ازش خواست که به دنبالش بره. خدمتکار چشمای پین دوز رو بست و اون رو به اتاقی که جنازه در اون بود برد و ازش خواستش که کفن جنازه رو به تنش بدوزه بعد دوباره چشمای پین دوز رو بست و اون رو به خونش برد خلاصه اونا کازم رو دفن کردن خدمتکار کمی کنار قبر موند اما زن کازم به خونه رفته بود و در اونجا آهانا میکرد. کرد روز بعد زن کازم به خونه علی بابا رفت تا پیش اون زندگی کنه. مغازه کازم رو هم به پسر بزرگش دادن. وقتی که چهل دوز دوباره به غار برگشتن با تعجب دیدن که جنازه و کیسه های تلایی که کنار غار جا گذاشته بودن سر نیست. رئیس دزدا گفت حتما یه نفر جای ما رو پیدا کرده. اگه ما نتونیم کسی رو که از راز ما سر در آورده پیدا کنیم، کارمون زاره. احتمالا دو نفر محل قاره ما رو یاد گرفتن. ما یکی از اونا رو کشتیم و یکی دیگه هنوز زنده است. حالا یکی از شما باید لباس مبدل بپوشه و به شکل یک مسافر وارد شهر بشه و ببینه که آیا به تازگی کسی در شهر مرده یا نه. اگه مرده، آیا به شکل مرموزی مرده یا دلیل مرگش مشخصه؟ خلاصه که باید ببینید مردم چی میگن؟ قاصدی که میره، حتما باید با خبرهای دقیق برگرده وگرنه سرش را از تنش جدا میکنم. یکی از دزدا آماده شد که این کار را انجام بده. اون از شجاعترین دوزده بود. خلاصه؟ اون مرد به طرف شهر رفت و اولین کسی که دید بابا مصطفی پینه دوز شهر بود. دوز بهش سلام کرد و گفت پیر مرد تو چطوری هنوز با این سن و سال دوخت و دوز میکنیم؟ پینه دوز جواب داد من با اینکه پیرستم پیر هستم ولی چشمام خوب میبینه. نشونم همینه هم که چند روز پیش یه جسد یه نفر رو براش کفندوختم تو نور خیلی کم این کار رو انجام دادم. دوز از اینکه تونسته بود سر نخ خوبی به دست بیاره خیلی خوشحال شد. یه تیکه طلا به پین دوز داد و گفتش که خونه یه کسی رو که مرده بهش نشون بده. مصطفی اول گفت که راه اون خونه رو بلد نیست چون رو با چشم بسته به اونجا بردن. ولی بعد که دوز قت طلای ای بهش داد شروع کرد به فکر کردن که شاید راه رفتر رو به خاطر بیاره. بلاخره اون دو با کمک که هم تونستن خونه کازم رو پیدا کنن. دوز روی در خونه کازم با گچی علامت گذاشت. بعد از بابا مصطفی خدافزی کرد و به جنگل برگشت. وقتی خدمتکار به اون خونه اومد متوجه اون نشونه گچی روی در شد. و حد صد که این نشونه احتمالا سبب ایجاد مشکلاتی میشه. به خاطر همون تک گچی برداشت و روی دوسته تا از خونه های دیگه هم علامت گذاشت. دوست جریان کشف خونه رو برای دوستاش تعریف کرد. ریس ازش تشکر کرد و خواست که خونه رو به اونها نشون بده. وقتی اونا سراغ خونه رفتن دیدن که چندتا خونه دیگه هم نشون داره. دزدی که نشون گذاشته بود نمیدونست چه جوابی به ریسش بده. و به محض اینکه به پناهگاه برگشتن گردنش رو زدن. دزد دیگه ای معمور این کار شد و دوباره به کمک بابا مصطفی خونه رو پیدا کرد و با گچ قرمز روی اون خونه علامت گذاشت. اما خدمت کار باهوش دوباره باعث شد که این هم کشته بشه. رئیس دزدا با دیدن این اتفاقات تصمیم گرفت که خودش به کشف ماجرا بره. اون که باهوشتر از بقیه بود دیگه روی درخونه علامت نزاشت بلکه خوب به اون نگاه کرد تا اون محل رو به خاطر بسپاره. برگشت و به بقیه گفت که به دکده مجاور برن و چند قاتر رو سی و, هشت و کوزه چرمی بیارن و فقط یکی از کوزه ها رو پر از روغن کنن. بعد هر سی نفر رو درون اون سی کوزه خالی کرد و اونها را به همراه کوزه پر از روغن بار قاطرها کرد و یک معمور کاملا مسلح رو همراه اونا فرستاد و درست زمانی که گرگ و میش غروب شده بود به شهر رفتن. رئیس دوستا کاروان خودش رو جلوی خونه علی بابا نگه داشت. و به اون که برای هواخوری خودی اومده بود گفت من یه مقداری روغن آوردم که فردا در این شهر بفروشم ولی الان دیر وقت و جایرم ندارم که برم. اگه تو لطف کنی و بذاری که ما امشب اینجا بمونیم ازت ممنون میشم. با اینکه علی بابا رئیس دوزدارو قبلا تو جنگل دیده بود ولی اونو نشناد و فکر کرد واقعا تاجر روغنه. به خاطر همین درارو رو باز کرد و به اونا خوش آمد گفت و به خدمتکارش دستور داد برای اونها غذا و جای خواب آماده کنم. اون غریبه رو به تالار خونه برد و بعد از اینکه شام خوردن به آشپزخونه رفت تا با خدمتکارش صحبت کنه. تو این فاصله غریبه به هوایی اینکه میخواد سری به قاطع را بزنه به حیات رفت. ولی در واقع به حیات رفته بود تا به سربازش بگه که باید چکار کنم. اون به هر کدوم از اونا مسئولیت یک کوزه رو داده بود و گفته بود هر وقت من از اتاقی که خوابیدم یه استخون به بیرون انداختم شما کوزه ها رو بشکنید و بیرون بیایید و اون را بیستید منم فوراً پیش شما میام. اون به خونه برگشت و خدمتکار جای خوابش رو بهش نشون داد. تو همون موقع روغن چراغ تموم شد و چراغ خاموش شد. عبدالله گفت نراحت نباشید به حیات برید و اون کوزه جلوی رو بیارید. خدمتکار ازش تشکر کرد و به حیات رفت اما اشتبایی سراغ یک کوزه دیگه رفت. وقتی دستش به کوزه خورد فردی رو که درون کوزه بود دید و آروم گفت وقتش شده. هر خدمتکار دیگه ای بود حتما با شنیدن این صدا میترسید و داد و فریاد می ولی اونم که باهوش و چجا بود فهمید که خطری اربابش رو تهدید میکنه. بنابراین به جای داد و فریاد آروم گفت که الان نه ولی نزدیکه. اون به همه کوزه ها همین رو گفت تا به کوزه روغن رسید. کوزه روغن رو به آشپسخونه برد و چراغ رو پر از روغن کرد و یک کتری بزرگ رو هم پر از روغن کرد. بعد کتری رو روی آتیش گذاشت که به بیاد. وقتی کتری جوش اومد اونو برد و در داخل کوزه ها ریخت تا دوزا همون داخل کشته بشن. اون میدونست که صاحب خونه دوزها رو با تاجر روغن اشتباه گرفته و به داخل خونه راه داده. وقتی این خدمتکار شجاکارش رو به پایون رسوند به آشپزخونه برگشت و منتظر موند ببینه چه اتفاقی میفته یک کم بعد رئیس دزدا از خواب بیدار شد پنجره رو باز کرد و دید همه جا آرومه یه تیکه استخون به طرف کوزه ها پرتاب کرد ولی صدایی نشنید خودش به حیاط رفت کنار اولین کوزه رفت و گفت خوابی؟ اما بوی روغن جوشیده به مشامش رسید و فورا فهمید که چه اتفاقی افتاده. وقتی که دید از روغن کوزه پر از روغن هم چیزی زیادی باقی نمونده، دیگه مطمئن شد که چه بلای سرش اومده. و تنها کاری که کرد این بود که از دیوارهای باغ بالا رفت و پا به فرار گذاشت. خدمتکار که این اتفاقا رو دید خیالش راحت شد و رفت و خوابید. فردا صبح وقتی طولوه آفتاب کرد علی بابا بیدار شد و دید که کوزه ها هنوز سر جاشون هستن پرسید که پس چرا بازرگان هنوز نرفته خدمتکار بهش گفت که داخل یکی از کوزه ها رو ببینه که هیچ روغنی در اون نیست وقتی علی بابا درون کوزه ها رو نگاه کرد دید که یه آدم تونه خیلی ترسید خدمتکار گفت نه ترس اون نمیتونه آسیبی به شما برسونه چون مرده وقتی علی بابا کمی حالش جا پرسید که چه اتفاقی افتاده خدمتکار گفت اگه من بازرگانم اون مرد هم بازرگانه و تمام ماجرا رو برای علی بابا تعریف کرد و گفت که اونا دزد بودن و بعد قضیه علامت های روی در خونه رو هم برای علی بابا تعریف کرد علی بابا که از این کارهای خدمتکار که البته برده اون بود خوشش اومده بود همون لحظه اونو آزاد کرد و گفت که میتونه هر جایی که میخواد بره رئیس دوزدان به غار خودش پناه برد و اون که حالا در غار تنها بود کسی رو نداشت یکم ترسیده بود به همین خاطر لباس مبدلی پوشید تا به شهر برو توی مسافرخونه اقامت کنه اون دوباره با خودش فکر کرد که اونا رو فریب بده. به خاطرمون مقدار زیادی از کالاهایی رو که میدونست پسر علی بابا برای تجارتش احتیاج داره برداشت و به اون داد و باب دوستی رو باهاش باز کرد. و گفت که اسمش حسنه. وقتی علی بابا از لطف یه بازرگان غریبه به پسرش باخبر شد، اونو به خونش دعوت کرد تا ازش تشکر کنه. بعد از مدتی بازرگان بلند شد که بره علی بابا گفت چرا میخواید برید شام رو مهمون ما باشید بازرگان گفت که باید بره و نمیتونه بمونه برای اینکه کارش یه دلیل مهم داره علی بابا دلیل رو ازش پرسید و اون جواب داد من باید غذایی بخورم که اصلا نمک نداشته باشه علی بابا گفت اگه دلیل شما اینه اشکال نداره من میگم که تو غذا اصلا نمک نریزن و بعد رفت و به خدمتکارش دستور داد که تو غذا اصلا نمک نریزن خدمتکار که هنوز پیش علی بابا مونده بود خیلی از این حرف تعجب کرد و گفت این مرد کیه مگه میشه آدم اصلا در غذا نمک نریزه علی بابا گفت اون مرد درستکاریه همین کاری رو که میگم انجام بده ولی خدمتکار که نمیتونست بیتفاوت باشه رفت و مرگ رو که میگفت اسمش حسنه دید و فورم فهمید که اون همون رئیس دوزدهه. حتی متوجه شد که زیر لباسش یه چاقو قایم کرده. با خودش گفت تعجبی نداره. اون میخواد ارباب منو بکشه برای همین نمک نمیخواد. ولی من نقشه هاش رو به هم میریزم. خدمتکار شام آماده کرد. بعد از شام حسن، و علی بابا و پسرش تنها شدند. تا کمی حرف بزنند و چیزی بنوشند. و احتمالا حسن اونارو بکشه. خدمتکار تاجی برای خودش درست کرد و بر سرش گذاشت و لباس نمایش پوشید و گفت: "باید برم و حواس اونها رو متوجه خودم کنم." اون جلوی در رفت. علی بابا با دیدن اون گفت بیا تو بابا اصلا میخواد ببینه تو چه کارهایی بلدی حسن که اصلا خوشحال نبود میترسید که فرسنت مناسب برای کشتن علی بابا رو از دست بده ولی وانمود کرد که از دیدن کارهای خدمتکار خوشش اومده خدمتکار چاقوی زیر لباسش فنهون کرده بود بعد از اینکه کمی نمایش داد رو درآورد اونو بالا پایین میکرد و گایی هم جلوی ارباب خودش میبرد و جوری وانه مود میکرد که انگاری این کار جزی از نمایشه علی بابا که از کارای اون خوشش اومده بود طلا بهش داد اما خدمتکار به حرکاتش ادامه داد و تو یه لحظه رو تو قلب حسن فرو کرد علی بابا و پسر فریاد زدن ای دیوونه ما رو بدبخ کردی خدمتکار گفت من شما رو نجات دادم اینجا رو ببینید بعد لباس اون کنار زد و ادامه داد ببینید چه دشمنی رو به خونه راه دادیم اون به همین دلیل نمیخواست که نمک بخوره نیبینید اون همون رئیس دوزداب و بازرگان گلابی روغنه علی بابا که دیگه واقعا خدمتکار رو به خاطر هوش و شجاعتش تحصیم میکرد پیشنهاد کرد که اون با پسرش ازدواج کنه و پسرم کاملا راضی بود و چند روز بعد مراسم عروسی شد بعد از پایان یک سال وقتی علی بابا خبری از دزدان نشنید به غار رفت و گفت کنجت باز شو در باز شد و علی بابا داخل رفت و دید که کسی در غار نیست. اون همه طلاها و نقره ها رو برداشت و به شهر برگشت. علی بابا راز غار رو به پسرش گفت و به این ترتیب بچه ها و نوه های علی بابا هم همه جز به سرمتمند افراد جهان شدند. امیدوارم که از شنیدن قصمون لذت برده باشید و منتظر قصههای بعدیمون باشید. سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها قصه هایی از غول ها و کتوله ها ماجره از جادوگرها سفر به سرتمین های جادوی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان جویی در, جوی در, جوی در سرزمین های زیر دریا همه اینها و بیش از اینها در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی.